حوض بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین السلام والسلام السلام على نبینا و آله خدمت عزیزان دانشوی خودم عرض سلام داریم روز به خیر عرض میکنیم انشالله که از نعمت صحت و سلامت به طور کامل برخوردار هستید و انشالله که به لطف الهی از هر گونه گزند و بلایی هم به دور مانید بحث ما در مجاز لغوی یا مجاز لفظی به آخرین مرحله خودش که مجاز مرسل بود رسید به طور کامل بیان کردیم و از نمونه‌های این درس یک دونه باقی موند که یک شعر من اون رو برای شما میخونم بعد انشاءالله وارد مجاز عقلی میشیم که اون رو هم یاد میگیریم که مجاز لفظی در مقابلش مجاز عقلی تمام یعنی مجاز به طور کل تمام میشه چون مجاز به دو دسته لفظی یا لغوی و عقلی تقسیم میشود بعد مجاز لفظی و لغوی به دو دسته تقسیم میشد استعاره که علاقش مشابهت بود و مرسل که علاقش غیر مشابهت بود و این مباحث رو با هم تمام کرد نموزج پنجم رو ببینید یک بیت. نیاز به این داره که شما توجه کنید و تصور خودتون رو نسبت به اون داشته باشید تا بتونید مبحث رو از لحاظ مجاز مرسلش متوجه بشید میگه ولع اوجیتو ملع از طرق خلفقوم ولع اوجیتو الف عوض از مضاف و مبیه یعنی اوجیتونا اوجیه یعنی الخیلول اعواجیتو یعنی عصبان اعواجی اعواجی مثل مثلا بگیم از نوع مثلا اعوج که بهترین نوع اسبه پس العواجیتو یعنی عصبهای اعواجی ما مقتداست یعنی اعواجیت یعنی الخیول یا الخیل که خودش اسمه جمعه الخیول الاعواجیت خلفهم پشت سر دشمن بود خب وقتی که شما حساب بکنید توی میدان جنگ لشگری لشکر دیگر رو شکست میده لشگر شکست خورده شروع میکنه به فرار لشگر پیروز به دنبال اون حرکت میکنه درست شد؟ دنبال اون حرکت میکنه از پشت سر میگه این لشگر اونها شکست خورده بود هم یعنی دشمن اسبان اعوجی ما پشت سر اونها بود یعنی اونها فرار میکردن ما برای اینکه اونها رو بزنیم و نتوانند در برند پشت سرشون میرفتیم و الععوجیتو خلفهم ملع مستر اینجا درست شد به معنای مالعه مالعتن این مالعت الترق این حال است ملعه ترک حال اون خلفه هم متعلق به یه ثابتتون موجودتون دیگه الاعواجیتو ثابتتون خلفه هم. تو اون ثابتتون یه هیه هستش که برمیگرده به الاعواجیه که فائلشه فائل اون ثابتتونه یه هیه برمیگرده به اعواجیه این ملعه حال از اون هیه هست. حال از اون هیست چون برمیگرده به العوجیه فاعل حال از اوست پس اینطور میشه تقدیر عبارت العوجیه تو یعنی الخیول العوجیه تو ثابتهن خلفهم ثابتهن خلفهم مالعه الطرق مالعت طرق ترجمه کنیم از پای اعوجی یعنی از پای درجه یک مثلا از نشاد رخش مثلا از پای درجه یک اعوجی بودند ثابتتن خلفهم پشت سر دشمن در حالی که پر کرده بودند تمام راه ها را یعنی پشت سر اونها ها تمام راه ها توسط اسب ما پر شده بود یعنی اگر اونها توی بیابانی داشتند میدویدند مثلا به عرض یک کیلومتر ها خب، کل این یک کیلومتر پشت سر اونها رو اسب ما پر کرده بود یعنی هیچ کدومشون نبود که اسبی از ما پشت سرش نباشه همه از پای ما تمام تا راه ها را پشت سر دشمن پر کرده بود پشت سر اونها کیپ به کیپشون بهشون ما می برای اینکه اونها رو بزن خب این طرف چیزی نداشت تو خلف هم یعنی ثابتتن خلف هم مل یعنی ماله اتر در حالی که پر کرده بودن همه راه رو تمام راه های پشت سر اونها یعنی تمام مسیر پشت سر اونها توسط اصف های ما پر شد. خب این من هیچی بعد اینهایی که از پشت سر دشمن رو دارن تعقیب میکنن و میدون اونی که داره فرار میکنه روی اسب میخوابه یعنی سرشون میذاره رویال اسب دله میشه دهنه اسب رو دوتاش شد تو دست میگیره هی تکون میده دره مثل اینایی که تو مسابقه ها دیدید میخوان سرعت فرار کنن اونا این تیپ از اون, اون جوییا که دارن درد اینایی که پشت سرشون دارن حرکت میکنن چه جوورین اینا روی اسب نشستن با یه دستشون دهنه اسب رو گرفتن با یه دستشونم شمشیر رو بلند کردن و روی هوا و دارن میره یا رو برای چی؟ برای خاطر این که به این اینکه رسیدن به اونا از پشت بزنن و بندازن پس اونی که داره جلو حرکت میکنه روی اسب خابیده به سرعت داره فرار میکنه اونی که پشت سرشه با یه دست دهانه اسب رو گرفته صاف نشسته روی اسب پشت سر داره میگازه دنبال او و یه دستش هم شمشی رو بلند کرده بالای سرش که اگه اگر رسید به او بزنه درست شد این؟ دومی داره تصویر تعقیب کننده رو میگه همونطور که اولی هم داشت تصویر تعقیب کننده رو به دنبال اونها میگفتی و ول مشرفیتو مشرفیه یعنی از سویو خل مشرفیتو و شمشیرهای مشرفی ما که در مشارف یمن میساختن ول مشرفیتو فوقهم هم یعنی فوقه رو شمشیرهای مشرفی ما هم بالای سر اونها بود یعنی از پشت که تحقیبشون میکردیم سرشو اگه بلند میکرد میدید شمشیر ما بالای سرشه همشون از پشت سر ما همشون رو تحقیب میکردیم کیپ تا کیپ و شمشیرهای ما بالای سر اینها بود ولی مشرفیت و ثابتتون فوق خود این بیت از نظر ترکیبی مثل اول و دومونش اینه همه و مشرفی شمشیرهای مشرفی ما بالای سر اونها بود مل الیوم این مل علیوم حال است از برای اون هیئی که فوق هم بهش متعلقه یعنی ثابتت فوق هم اون هیه مثل اینکه دیگه و شمشیرهای ما بالای سر اونها بود درست شد در حالی که تمام روز را پر کرده بود در حالی که تمام آن روز را الیوم تمام آن روز را بگید پر کرده بود خوب حالا سؤال اینه آیا شمشیرهای اینها تمام اون روز را پر کرده بود یا تمام اون فضای بالای سر اون لشکر فرار کننده رو قطعا فضای بالای سر اونها رو پر کرده بود باید بگه شمشیرهای ما بالای سر اونها بود در حالی که تمام فضای بالای سر اونها رو پر کرده بود درست شد؟ یعنی هیچ کسی نبود که بالای سر شمشیر نباشه شمشیر بالای سر اونها رو فضاش رو پر کرده بود ولی به جای اینکه فضا بگه گفته روز درست شو چرا چرا چرا پایین میگه نگاه کنید مل الیوم یراد به مل الفضا الذی یشرق علیه النهار فلما جاء مرسلون علاقته ال حالیتو میگه اون فضا اون فضا محل روز در اونجا تابیده درست شد یا نه روز در اونجا حلول مثل اینکه مثلا فرض کنید که یه زمین فوتبال محله خب روز میاد در اونجا حلول میکنه میگیم زمین فوتبال درست شد روز درش حلول کرد درست شد پس بنابر این فضا که محله فضای بالای سر اونها روز چون طولوش کرده بوده گفته تمام اون روز را شمشیرهای ما پر کرده بود در حالی که تمام روز رو پر نکرده بوده بلکه تمام فضایی که اون روز درش حلول کرده بوده بالای سر اونها اون پر کرده بوده مجازه به علاقه حالیت حال کدومه؟ روز نور ارشیدی که دلو کرده بوده روز این حال محل کدومه که این اومده بوده؟ فضای بالای سر اونها این فضای بالای سر را روز پر کرده بود گفته تمام روز را شمشیرهای ما پر کرده بود منظور تمام فضایی که اون روز درش پلود کرده بوده پس میشه علاقه حالیت روز حال و اون فضای بالای سر اونا محله حال و گفته و اراده محل و کرده خب پایین میگه ال اعوجیت و الخیل و منصوب و اله اعوجه اسبانی که الخیل اسم جمعه یعنی اسبانی که منصوبا به اعوج اعواج, اعواج بوده و هو هر از اون کریمون هلال یه اسب با نژاد و با ارزشی بوده از بنی هلال که از اون اسبهایی که از اون نژاد باشه بهش میگفتن اعوجی و المشرفیتو از سیوف و ملعف شطرین منصوبا للحال و, و خبر المبتدف شطر الاوله از ظرف خلفهم و شطر از ظرف و فوقه هم که من ترکیب کرده یسف و المتنبی احات تجویوش سیف دولت به اعدائه توصیف میکنه احاته و سلطه لشکر سیف و رو به دشمن در حال فرار تمام شد خب بریم سر مجاز اقلی که آخرین بحث مجاز مجاز لفظی تمام شد مجاز لغوی که به دو دسته مجاز استاره و مجاز مرسل تقسیم شد تمام شد حالا اومدیم سر مجاز عقلی مجاز عقلی یعنی مجاز در لفظ نیست مجاز در غیر لفظه و عقل اونو درست شد به این دلیل گفتن مجاز عقلی در مقابل مجاز لغوی مجاز لفظی ببینید گوش کنید ما ابتدا حقیقت عقلی رو بگیم که بعد مجاز عقلی رو که تعریف کنیم شما بفهمیدش چیز ساده یا خیلی سخت نیست ببینید بنویسید اسناد فعل اسناد فعل یا شبه فعل شبه فعل مثل اسم فایل اسم مفعول صيغه مبالغه اینا شبه فعل اسناد فعل یا شبه فعل یعنی مشتق به من و له من هو له یا ما هو له ما هو له خودش در اعتقاد متکلم در ظاهر حال متکلم اون اعتقادام گوش نمیوشه نه ولی در ظاهر حال به در ظاهر حال متکلم حقیقت عقلیست حقیقت عقلیست ببینید گوش کنید چون ساده یه هر فعلی هر فعلی یه فائلی برا خودش داره حالا فعل مشغول باشه یه نایب برای خودش داره اگر این فعل نسبت به این فائل یا نایب فائل در ظاهر حال متکلم که ما نگاه میکنیم این فعل و این شبه فعل آنه فرقه نمیکنه اسم فاعل اسم. به فاعل واقعی خودش از نظر متکلم اصناد پیدا کرده به فاعل واقعی خودش از نظر متکلم اصناد بیدا کرده اینو بهش میگن چی؟ میگن حقیقت عقلی اصناد ببینید اسناد. میگم این فعل کی انجام داده؟ این کاری کیه؟ میگه کاری اینه. میگم خب از نظر متکلم میگی ما میگه بله بله. میگم از نظر متکلم آقای زد این فعل فعالش کی باید باشه؟ میگه این. میگم حالا به این هم اسناد پیدا کرده میگه بله. میگیم با حقیقت کرد. میگم این فعل نه فعالش کی باید باشه؟ میگه این. از نظر متکلم. ظاهر حالی که ما می‌بینیم پس این وقتی به این اسناد پیدا کرد از نظر ما میشه حیفات عقد حقیف. پس اسناد فعل یا شپ فعل به من هوله هو چرا گفتیم من هوله هو ما هوله هو چون فایل گاهی اوقات عادله میشه من هوله هو کسی که این فعل مال اوست گاهی اوقات غیر آقله مثل شب روز نمیدونم دنیا اینطور چیزا میشه ما هوله هو اسناد فیل یا شبه فیل به من هو یا ما هو خودش در ظاهر حال متکلم میشه حقیقت بگید عقل حقیقت عقل حالا بیایم سال مجاز عقل. ببینید مجاز تعریفش رو یادداشت می‌کنید که بتونید بفهمید اسناد فیل یا شپفل اسناد ث یا شپفل به غیر من هو له بر غیر من هو وله. یا ما هو در ظاهر حال متکلم به واسطه علاقه به واسطه علاقه و قرینه مانعه و قرینه مانعه مجاز عقلیست مجاز عقلیست است. حالا نگاه کنید گوش. ببینید ما گفتیم ظاهر حال متکلم چون با کلام رو ما با متکلمش میشناسیم و می... میسنجیم بعدم تو دلش که نمیدونیم ظاهرش رو میدونیم. ظاهر حال متکلم. این تو ذهنتون داشته باشید قرینه علاقه هم گفتیم فعل یا شبه فعل هم گفتیم به غیر من له یا غیر ما له میشه مجاز عقلی چرا مجاز عقلی چون اسناد اسناد رو عقل میخواهم حالا شما نگاه کنید مثال بزنم مثال مثال مثال دو تا مثال بزنیم سه تا مثال بزنیم شما میفهمید ببینید فرض کنید شما منو میبینید خب من اسمم مثلا سید محمد میدونید که من مسلمانم خدا رو قبول دارم اینا رو میدونید دیگه خب مادی نیستم ماتریالیست نیستم مسلمانم خب من میام باشو میگم بهار شده بهار شده نگاه میکنم میبینم همه جا سبز شده میگم نگاه کنید خداوند همه جا رو سبز کرده همه جا رو زنده کرده الان زنده کردن همه جا نسبت داده شده به خداوند از طرف من من متکلم این حقیقت چون من معتقدم همه چیز رو خدا می آفرین. حالا اگر دیدید من اومدم اینطور گفتم نگاه کردم گفتم ببینید بهار چیکار کرده بهار همه جا رو سبز کرده بهار همه جا رو بگید سبز کرده شما زود میگین آقا مشرکه بهار رو فائل سبز کردن میدونه در صورت که خدا تو قرآن میگه همشی دست خداست خداست که میرویاند بلکه اینجا میگی چیه؟ میگید مجاز گفته سبز کردن و آفریدن رو نسبت داده به بهار که زمانه درست زمانه و فائل واقعی من و له خداست از نظر این چون ما میشناسیم مسلمان درست شده نه؟ میشه مجاز عقلی اصناد داده شده به زمان حالا نگاه کنی یه مثال یه مثال اگر همین که من گفتم همین که من گفتم بهار همه جا را سبز کرده است این رو یه نفر کمونیست بگه م? که خدا رو قبول نداره میگه هرچی هست این طبیعته و طبیعته که داره اینطوری حرکت میکنه بر اساس تنظیمات خودش اگر یه نفر کمونیست اینو گفت که بهار همه جا را سبز کرده است و ما میدونیم ظاهرشو میبینیم که اون کمونیسته از نظر اون این حقیقت است یا مجازه؟, مجازه حقیقت عقلی چون این بهار رو من هو له ما هو له میدونه بران درست شو؟ پس ما کلام را با متکلمش میسنجیم کلام را با بگید متکلمش میسنجیم اگر این فعل یا شبه فعل که اسناد داده شده به من هو له یا ما هو له درست شو اسناد داده شده این اسنادش به این من هو وله یا ماه در نظر او اسنادش مال خود این من وله و ماه و باشه میشه حقیقت اگه مال خودش نباشه به غیر من هو وله یا غیر ماه اسناد الله شروع دادش باشه در ظاهر او با وجود علاقه و قرینه آه میگیم این مجازه الان در مورد من که مسلمان بودم گفتم بهار همه جا رو سبز کردم اون قرینه چی بود؟ مسلمان بودن من که کرد اینو مجاز قرینه برای اون کمونیسته وجود نداشت اون کمونیست رو ظاهر هم نشون میداد که مادیه و واقعا بهار رو فائل مید پس نگاه کنید توی عبارت کتابتون قواعد ساده است المجازل عقلی هوه اسناد الفعل او ما فی معنا من گفتم به جای ما فی معنا آنچه در معنای فعله گفتم چی؟ شبه فعل یا گفتم مشتق اسناد الفعل او ما فی معنا یعنی شفه الا غیر ما له من به جای غیر ما هو غیر من هو هم گفتم چون همیشه ما نیست فایل گاهی اوقات عاقل لهعلاقتن یکی علاقه میخواد مع قرینتن با وجود قرینهای که مانعتن من ارادت اسناد الحقیقی یه قرینهی هست که نمیگذاره اسناد حقیقی بدید من مسلمانم قرینه میگه که شما نمیتونید بگید که من مشرک هستم و میگم بهار رو صرف کرده. درست شد یا نشد؟ پس مع قرینت من اراده الاسناد ثقیل. این میشه مجاز عقلی حالا اگر اسناد فعل یا ماهو وفی معنا به من هو له یا ماهو له باشه در ظاهر حال متکلم این ظاهر حال رو نگفته که باید باشه در ظاهر حال متکلم این میشه چی بگید حقیقت حقیق اگر ب... خودش اصناد پیدا کرد مثلا شما نگاه میکنیم این, این شعر رو یه نفر این شعر رو میگه میگه این شعر رو شما میتونید بنا خب من باید بدونم اینه کی گفته مثلا میگه اگر دست علی دست خدا نیست چرا دست دگر مشکل گشانیست؟ اگر دست علی دست خدا نیست چرا دست دگر مشکل گشانیست؟ میگه دست علی دست خداست خدا علی خداست چون دستش مشکل گشاست خدا مشکل گشاست دست علی هم مشکل گشاست پس علی خداست. خب این اگر یه نفر علی اللهی بگه که ما ببینیم ببینیم بله این آدم سیویلش اونطوری است و تیپ و قیافش علی اللهی است و فلان میگه این اصلا به قول خودمون گفت گفته علی اللهی مام میذرمش کنه میشه اما اگر بدونیم این رو مثلا مرحوم میرفندرسکی گفته آدم بزرگیه موحد مرجع آدام یه این مبالغه کردن اسناد به غیره منحوبه لح داده آه درست شده نه منظورش اینه که دست علی کار خدایی میکنه به ازن الهی داره این کار رو انجام میده آه این دست علیه که دست خدا داره مجازن محسوب میشه چون خدا رو داره کارش رو انجام میده این پس مجازه خوش چی گفتید پس ما کلام را با متکلمش میسنجیم نه با اعتقاد خودمون نه با اعتقاد خود این مبحث رو من برای شما تعریفش رو بیان کردم حالا نگاه کنید مجاز عقلی شیشتا تا علاقه داره شش علاقه داره الاسناد المجازی یعنی اسناد مجازی مجاز عقلی یکونو سبب الفل یک زمان الفل دو مکان الفل سه مستر الفل چهار به اسناد المبنی لفایل الالمفعول یا مبنی للمفعول الال فایل شیش پس علاقهاش یک سببیت سببیت. دو زمانیت سه مکانیت محلیت نمیگه محلیت مال مجاز مفتر بود مکانیت چهار مستریت پنج فائلیت شیش مفعولیت پس علاقه چی شد سببیت زمانیت مکانیت مستریت اسناد فعل اسناد شبه فعل یعنی اسم فائل به مفعول اسناد اسم مفعول به فائل که بهش بگیم فاعلیت یا مفعولیت پس سببیت زمانیت مکانیت مستریت فائلیت مفعولیت این شیشده بعد یه تبصره این تا در یه سطح نیستند. یعنی اینطور نیست که مثلا ما اگر 120 تا مثال مجاز عقلی تو قرآن داشته باشیم هر کدوم اینها 20 تا اینطور نیست مثلا سببیت و زمانیت و مکانیت خیلی زیاده اما مستریت و فعالیت و مفعولیت کمه نسبتا خیلی سیار درست شد این ستایی دیگه کمه پس یاد گرفتیم که اینها با هم برابر نیستند این مبحث اول مبحث دوم مجازه عقلی، فن بیان یعنی فن سخنه این در هر زبانی هست اما بعضی از این علاقه ها مال زبان عربیه مثل علاقه مستریت مستر یعنی مفعول و مطلق این تو فارسی ما نداریم بروشو. پس مجازش هم نیست این علاقش نیست ولی مثلا سب کنید که سببیت هست زمانیت هست مکانیت هست درست شو زیاد هم هست پس مجاز عرقلی ما داریم تو فارسی اما دلیل بر این نیست که تمام علاقه هایی که توی عربی میخونیم تو فارسی هم باشه نه بعضی از اینها مختص به بگید زبان است مثل مستریت که از مفول و مطلق مرس میشه حالا الان نگاه کنید نگاه کنید شاید شما صد بار شنیده باشید صد بار که مثلا نادر شاه هندوستان را فرد کرد شنیدید نادر شاه هندوستان را فتح همه تونم فهمیدید یعنی نادرشاه لشگر کشید به هندوستان و با لشگرش بر اونها پیروز شد و اونجا رو فت اینو میفهمید همه ما اینجا فتح کردن رو نسبت به کی دادیم به نادرشاه فتح کردن رو نسبت دادیم به نادرشاه ولی آیا واقعا نادرشاه هندوستان رو فتح کرد نادرشاه یه نفری بلند می میشد میرف هندوستان میخواست هندوستان فت کنه میشد نه یه چک تو گوشش میزدن بهر میگشت بلکه کی فت کرد سربازان لشکریان نادرشاه فت کرد اما کی سبب بود کی سبب بود علت بود نادرشاه پس ما پیروز شدن رو نسبت دادیم به نادرشاه درست شد؟ نسبت دادیم به نادرشاه چون علت بوده سبب بوده یاد گرفتید؟ پس اینجا فت کردن پیروز شدن بر هندوستان نسبت داده شده به نادرشاه در صورت که نادرشاه سببه خب این مطلب رو دیدید حالا نگاه کنید گوش اگر ما این شرط داره ها اگر ما اسناد میدهیم فعل یا شبه فعل رو به سبب باید آن سبب سبب اصلی باشه باید سبب اصلی باشه یعنی اول اول یعنی مثلا اگر نادرشاه یه قایم مقام داشته، جانشین داشته، مثلا فرض کنید که قلی چه میدونیم یه کسی بوده. او اون شخص اگر بهش بخوایم نسبت بدیم نمیشه. نمیشه نمیتونیم بگیم قلی هندوستان که هندستان رو فرد کرد. غلط. سببه باید سبب اصلی باشه. مثلا تو قرآن قرآن در مورد همین سبب مجاز عقلی به علاقه سببیت میگه یو به و ابنا اهم یو یعنی زبه میکرد سر میبرید یو به ها ابنا اهم یو زبه ها به فرعون میگه فرعون سر میبرید فرزندان پسر بنی اسرائیل قوم موسی رو پسرانش رو فرعون سر میبورید خود شما دیدید توی این چیزا میگن فرعون هرچی پسر به دنیا میامد رو سر میبورید فرعون سر میبورید شاید یه هم فرعون چاقو نزاشت تو سر ببره. درست شده نه؟ شاید یه رو هم او بگو سر نبوردیده اما ما میگیم فرعون این کار کرد قرآن میگه چرا؟ چون فرعون سبب بود حالا فرعون یه دونه معاون داشته یه قائم مقام داشته به اسم هامان که تو قرآن هم است. ما نمیتونیم دیگه نسبت به اون بدیم باید سبب سبب اصلی باشه. شد پس اسناد فعل شد ببگید سبب و این زیاد هم هست. مثلا فرض کنید تو قرآن داره که آدم و هوا گوش کردند به حرف شیطان شیطان اونها رو گول زد گوش کردن به حرف شیطان و از اون میوه ممنوع خوردند بعد میگه که وقتی از اون میوه ممنوع خوردند ینزعو انه هما لباسه شیطان لباس بهشتی را از تن اونها در بود شیطان لباس بهشتی را از تن آدم و حوا در بود یا خداوند به خاطر معصیتش این کار کرد. خدا کرد. اما چرا میگه شیطان لباس بهشتی را از تن اینها در بود چون چه شیطان سبب شد؟ شیطان سبب بود برای این کار. پس شد مجاز عقلی و علاقهی بگید سببیه الان توی نموزج ها نگاه کنید نموزجها. نموزج ها نموزج پنجم رو ببینید میگه حکومت و حکومت تو زبان عربی یعنی دولت یعنی قوه مجریه دولت یعنی حکومت یعنی قوه حاکمه بر تو زبان عربی با فارسی الدولت الاسلامیتو یعنی حکومت اسلامی الحکومتو یعنی اون قوه مجریه میگه منت الحکومتو این قوه مجریه بنا کرده کسیرن خیلی از این مدارس رو در مصر خیلی از این مدارسی که شما میبینید اینها رو این قوه مجریه ساخته ها یعنی این حیعت دولت که حالا وزیر و وزرا هستند یا رئیس جمهور و وزرا این هیئت دولت این هیئت دولت الحکومت این هیئت دولت خیلی مدرسه در مصر ساخته مثل اینکه ما بگیم فلان رئیس جمهور خیلی مدارس رو در ایران ساخته خب او ساخته شاید اون اصلا یک بار هم اصلا ترقیه گچ و سیمان نرفته آجور ندیده این حکومت این هیئت دولت خیلی مدارس ساخته در مصر یا میگیم این, این پل رو فلانی ساخته فلان رئیس جمهور، این فرودگاه رو فلانکس زده ما میگیم داریم این رو به کار میبریم. اما او نکرده اما سبب بوده بوجهش تصویب کرده نظارتش رو کرده آ، هزینش رو پرداخت کرده اومده افتتاحش کرده اینا اسناد داده شده به سبب نگاه ما خودمون داریم با اینا زندگی میکنیم دیگه بعد توی مثال ها نگاه کنید بنت حکومت و برست شد بنت حکومت میگه حکومت رو لم تبنه به نفسها حکومت خودش این کار نکرده بیاد مدارس درست کنه ولیکن نها امرت و فل اسناد مجاز و عقلی علاوته از سببی علاقش چیه سببیه توی ساده است فهمیدید چیز بقول خودمون پیچیده نبود حالا نگاه کنید توی مثال های کتاب مثال اول درست شد مثال اول برا همین علاقه سببیت مثل همون نادرشان اندوستان رو کرد مثل اینکه که الان دیدیم که این هیئت دولت مدارس زیادی در مصر افتتاح کرده و ساخته قال متنبی متنبی گفته یصف و ملک روم توصیف میکرده پادشاه روم رو بعداً حزم حسین و سیفالدوله بعد از اینکه اونو شکست داده بود آقای سیفالدوله قاضی قادشاه روم به جنگ سیفالدوله اومد و سیفالدوله او رو شکست داد بعد از اینکه سیفالدوله او رو شکست داد دلش شد اون فرار کرد زخمی شد فرار کرد پسرش و دامادش و اینا هم کشته شدند فرار کرد رف روم وقتی فرار کرد رفت روم دیگه غلط کرد گفت من دیگه غلط میکنم برم به جنگ جنگ و گذاشت کنار توبه کرد رفت توی صومعه دیر رفت توی قاری دیری اونجا شروع کرد به عضلت و گوشه نشینی و توبه که دیگه من غلط میکنم جنگ کنم بعد اگر دیده باشید این کسانی که در سومعه و دیر و یا حتی این مسیحی ها کشیش ها و پاک ها یک ازاهایی دارن این ازاها بلنده اینطوری به دست میگیرن سرش یه قلوم بست مثل ازایی که این خدام خدام اماکن مذهبی مثل حرم امام رضا علیه آلاف و و از سنها بعضیش رو میدیم حالت نقره تو دستشون به اون رو شکن اکاز خدمت میگه این آدم اومده بود رفته بود تو دیر با عصا راه میرفت هی میگفت غلط کردم غلط کردم دیگه من به جنگ سیف و دوله که هیچ به هیچ جنگی نمیرم خب میگه این آدم این آدم الان توی دیر داره با اصا راه میره در صورتی که چندی قبل اگر اسب درجه یک بهش میدادی می این یابوه راله میره که یعنی سیف الدوله این و دوله این طور از پا انداخت چیه رو بفهمید؟ سیف و جوری این رو شکست داد از پا انداخت که الان توی دهر داره با راه میره در صورتی که قبل از این توی میدان جنگ بهترین اسب رو هم یابو حساب میکرد قبول نمیکرد میکرد میگو میگوی را نمیره. خب این شعر رو محتواشو من گفتم اما بگاه کنید گوش کنید ما اسار رو راه میبریم یا عصا ما رو راه میبره یعنی یه نفر داره با اسار راه میره داره خودش راه میره اما به کمک عسا یعنی سبب راه رفتنش اساس، اصلا نباشه نمیتونه راه بره برود اینه دیگه الان نگاه کنید میگه یمشی و یمشی بهی ال اکاز مشابه یعنی راه بود یمشی به اکازو ال اکاز یعنی اکازو اصایش او را راه میبرد همینجا شاید مثاله عصایش او را راه میبرد یا او راه میرود به کمک عصاش به سبب عصاش یعنی او به سبب عصا دارد راه می رود این میشه حقیقت ولی اگه بگی عصا داره او را راه میبرد راه بردن رو نسبت دادیم به عصا درست شد به سبب یعنی اینقدر مبالغه توشه دیگه اینقدر مثل همون که میگیم نادرشان دوستان را شد مبالغه کردیم دیگه یعنی گفتیم انگار اینگار نادرشان یه رفته فد کرد همه رو اسناد دادیم او فایده مجازه هرنی اینجایی اینه دیگه مبالغه توشه میگه یم شیبهل اوکاز اکاز اکاز او را راه میبرد فدر آن در تائبن توبه کنان الوکاز یعنی اکازهو الفلام وزد از مضافن لیه اسای او او را راه میبرد دران دیر فد تا توبه کنند این وابا وحالی هست وقد کان یعبا و حالان که ابا میکرد و نمیکرد مشیه راه رفتن اشقر اجرد اشقر و اجرد صفتی فرس مقدره یعنی مشی فرسن اشقر اجرده و حالان که عبا میکرد راه رفتن اسب سرخمو اشقر یا کممو اجرد این اسب سرخمو و کممو اجرد که بهترین نوع اسبه این اسب درجه یک رو راه رفتنشو قبول نمیکرد قبلا میگفین یا یابوه راه نمیره که بهترین عصبو میدادی این چیه راه نمیره اما الان داره توی دیر عسا او را راه میبرد، عسا او را راه میبرد. او عسا که او را راه نمیبرد، اما اساس سبب راه رفتنشه ما راه بردن را نسبت دادیم به عسا نگاه کن اوکاز عسا اوکاز اساس, اساس. پایین میگاشیه فی طرف ها زوج که در کنار اون در طرف اون هست یک برامدگی زود. و قوله مشی اشتره اجرده یعنی مشی جواد جواد یعنی فرست اشقره اجرد ول اشقر من الخیل ال احمر سرخ ول اجرد القصیر و شعره کوتاه کتا متنبی میگه انه اقام فی دیر روحبان این پادشاه روم رفته اقامت کرده سکونت کرده در صومعه و دیر رهبانان، راهبان و سار یمشی علی اکاس و داره حرکت میکنه با عصا تا ایبن من الهر توب کنان از جنگ بعد انکان لا یرزا مشیل جواد الاشقر بعد از اینکه قبلا راضی نمیشد راه رفتن اسب سرکموی موی مو بهترین نوع اسب رو و هوه اسرو الخیل اندلار است باهالون که این بهترین اسب است نزد عرب بهترین اسب خوب خب تو این شهر به جای این که بگه او به سبب عصا داره راه میره ها داره نسبت میده چی راه بردن رو به اصا اصا داره او رو راه میبره نه اون داره اصا رو راه میبره ازش کمک میگیره اصا چوبه اما سببه چون سبب اصلی هم هست میخواد بگه مبالغه میکنه. دیگه سبب اصلیه یعنی اگه اون نباشه اصلا این نمیتونه قدم برداره درست شد اصا داره او رو راه میبره این یک دو رو نگاه کنید با صلویت ها دو و راحت هم هست چی میگه؟ میگه که این مثال من زیاد زدم مثل این میگه بنا ساخت بنا امر آ، مر بنااز امر آس که به توطعه معاویه و خودش رفتند و مصر رو فت کردند و فرماندار امیر رو به قتل رسوندند و مال کشتر رو هم با نامردی شهید کردند و مصر رو امراض فت کرد فرماندار مصر شد از طرف معاویه میگه بنا عمرابن العآس مدینة فستاد الان هست شهر فستاد در مصر این شهر فستاد رو میگه عمرابن آس ساخته عمربن آس این شهر فستاد رو ساخته واقعا عمرابن آس ساخته این شهر فستاد یه سرزمینی بوده بیابانی و خالی از سکنه امراث آمده اونجا ساختمون ها رو ساخته و این شهر رو درست کرده مثل که مثلا بگی شهر جدید پردیس رو فلان کس درست کرد این امراث اصلا اونجای دستش به گشت و سیمان هم نخورده اصلا یه سنگ هم رو سنگ نذاشته ولی امراث چیکار کرده اومده اونجا رو دیده جاشو به سلاح گزارش کرد پسندیده بعد دستور داده کمک کرده نمده نمالا موجه داده نظارت کرده به اسم امرعاست تموم شده که امرعاست شهر فستاد رو ساخت بنا امروگنل آس مدینتل فستاتی بنا رو نسبت دادیم و به امرعاست هم نسبت دادیم چون نفر اول و فرمانده مصر خب مثل همون بنت الهکوم است حالا نگاه کنید از بحث رو اونزره لن اولین تجد فعلفی کل من می‌بینی میبینی که فعل در هر یک از اینها اصن دعلا غیر فایلی اسناد داده شده به غیر فایلش فا انال اکازلا یمشی زیرا ما میدونیم اصال راه نمیره ولی امیر امر ابن امیر مصر لا یبنی اون که ساختمون نمیسازه، و یسیر و صاحب الاکاز بلکه اونی که حرکت میکنه اون صاحب اساس. و یبنی اون و امیر و اونی که میسازه ساختمون ها رو کارگزاران امیرن ولیکن لمکان الوکاز و سببا فلمش چون اکاز سبب در راه رفتنه ولی امیر و سببا بنا، و امیر سبب و علت در بنای اسن در فعل الا منهما مجازن عقلیه اسناد داده شده فعل به هر یک از اینها به شکل مجاز عقلی خب من از قرآنم براتون دو تا مثال زدم یوسف و ابناهم که مال فرعون بود یا و عنهم لباس و ما شیطان لباس رو از تن آدم و حوادر بود که شیطان سبب بود اونم سبب بود دیدید که سببیت زیاده درست شد و ما هم خودمون بکار. سه زمانیت، سه چیه بگید؟ زمانیت مثلا این آیه قرآنه ببینید اتقو یومن اتقو یومن بترسید روزی را یومن مفهول منظور از یومن روز قیامت بترسید از روزی قیامت یجعل ولدانشی با اتبو یومن یجعل ولدانشی با یجعل الولدان شیبا یجعل الولدان شیبا این جمله صفت یومنه زمیری تو یجعلو هست برمیگرده به یوم الولدان مفعول اولشه شیبا مفعول دومش. ترجمه چی میشه؟ به ترسید روزی را که قرار میدهد بچه ها را پیر بترسید روزی را که بچه ها را پیر قرار می دهد. یعنی بچه ها پیر می کنه. یعنی اون روز بچه ها پیر می کنه. از اون روز بترسید منظور روز ریاند حالا سؤال اینه اون روز بچه ها پیر می کنه؟ اون روز بچه ها رو پیر میکنه روز بچه ها رو پیر میکنه نه بلکه حوادث و مشکلات اون روز انقدر سخته درست شد؟ که باعث میشه بچه به شکل پیر درگیر. اگر گفته بود حوادث اون روز مشکلات اون روز بچه را پیر میکند میشد حقیقت ولی وقتی میگه اون روز بچه را پیر می کند بچه ها رو پیر میکنه اسناد به زمان داده شد خود ما می به کار میگیم می امروز من از پادرو خوب امروز من از پادرو امروز, پادر امروز زمانه مثل دیروز مثل فردا بلکه منظور هممون میفهمیم که میگیم امروز منو خسته کرد امروز من از پادر ورد یعنی حوادث امروز مشکلات امروز من از پادرو ورد اگر میگه حوادث و مشکلات امروز من از پادره بود میشد حقیقت حالا که میگه امروز من از پادره بود اسناد دادیم به زمان درست اسناد دادیم به زمان درست مثل اینکه شما میبینید میگن از قول امام هستش که آشورا اسلام را زنده نگه داشت. آشورا اسلام را زنده نگه داشت یا امام حسین اسلام را زنده نگه داشت؟ آشورا زمانش. اصلا دادیم بیسم؟ یعنی اگر میخواستیم به شکل حقیقت تعلیب بگیم بعد میگوییم حضرت عباد امام حسین علیه السلام در روز آشورا اسلام را زنده نگه ولی وقتی میگه آشورا اسلام را زنده نگه داشت همون فهممیله میشه اما به شکل مجازه عقلی اما خب ایجاز توشه مختصرتر شده شد زمان حالا نگاه کنید مثال کتاب رو نهار و زاهد روز انسان زاهد خدا ترس روز انسان زاهد سااعمون نیشه به فعله. الان ساائم خبر نهاره، یه هوور توشه برمیگرده به نهار. روز انسان روزهدار روزه است. روز او روزه است یا خود انسان زاهد در روز روزه است. آ اینطور باید میگو. باید می زاهد در روز روزدار است. ولی گفته روز او روزدار است. و لایل هو قائم لایل هو و قائم قبل. تو قائم او و بر حالا شب او قائم است شب او شب زندهدار است یا خود او در شب زنده دار است شب زنده دار است خود او یعنی خود ظاهد در شب شب زنده دار است قائم است اسناد داده سائم و قائم رو به زمان یعنی نهار و لیل در صورتی که سائم بودن و قائم بودن مال زاهده و این دوتا نهار و لیل زمان او هستند. یعنی اگر گفته بود زاهد در روز روزدان و زاهد در شب شب هست است در حالا میگه روز انسان زاهد روزدار و شب او شب شبزنددار است میشه مجاز هست. چون ما میدونیم روز و شب که و قائم نمیشه. روز و شب زرفت زمانه شد راحت بود و ما زمان رو برای شما گفتیم سومنظر علل مثالین ادتالیه این تجد ان سومه اصنده علا زمیر نهار سوم اصناد داده شده به زمیر نهار ولقیام اصن دایلا زمیر اللیل درست شد و هر دو مجاز حالا بیایید سر چهار چهار مکانه و ما خیلی این مکان رو داریم مکان زیاده درست شد مثلا شما میبینید تو قرآن میگه تجری من تحتها الانها رو بهشت رو که میگه میگه تجری من تحتها الانهار یعنی چی تجری نسبت پیدا کرده به الانهار نهرها میگه جریان دارد از زیر درختان بهشت نهرها نهر جریان داره یا آب نهر اینجا جریان نسبت داده به نهر نهر که فایل واقعیش نیست واقعی آب نهره باید میگفت تجریم تحت ها میاه و لنهار میاه جمع ما آه. میاه و لانهار. ولی میگه لنهار شد یا نه؟ کیا شما میگه مجلس شورای اسلامی فلان چیز را تصویب کرد مجلس شورای اسلامی فلان چیز را تصویب کرد مجلس تصفیب کن مجلس اون در و دیوار و پنجره این مجلس یعنی مکان جلوس مجلس شورای اسلامی یعنی اون مکان اون میتونه چیزی تصفیب کنه پس منظور چی از مجلس شورای اسلامی کلان چیز را تصویب کرد اون؟ یعنی نمایندگان مجلس درست شد نه پس اسناد دادید به؟ بگید مکان و این زیاد زیاد مثلا میبینید میگه ایران قطع نامه 598 را پذیرفت قبول کرد خب ایران قطع نامه 598 را پذیرفت ایران پذیرفت منظور یعنی حکومت ایران درست شد یا نه اسناد دادیم به مکان پس اسناد به مکان فراوان است مثل این نگاه کنید چهار ازدهمت شوار القاهرته ازدهم یعنی شلوغ شدن یعنی ایجاد زحمت کردن به هم چسبیدن به هم چسبیده است خیابانهای قاهره خیابونهای قاهره به هم چسبیدن ازدهام کردن یا مردم تو خیابانا آه مثل باید خیابونها ترافیک کردند، خیابونها ترافیک کردند یعنی رفت و آمد و سخت کردن یا مردم تو خیابون، آه خیابون ها ازدهام نکردن شواره مردم در خیابان ها قاهره های قاهر ازدهام کرد شد الان شوارع فاعل ازدهته در صورتی که باید بگه ازده من فی شوارع ال قاهرت ازده من نگاه کنید، حالا تو بحث سومنظر الى المثالین تالیه این تجد انه سومه اصنده الى زمیر النهار، و القیامه اصنده الى زمیر اللیل ول ازدهام و اصنده شواره درست شد؟ شو؟ و ازدهام ول ازدهام اصنده الى شواره ما انه الى هاره بل و منفی یعنی ظاهد کسی که در روز هست اون روزه میگیره و لیل خودش و لیله لا یقوم ما شب خودش قیام نمیکنه شب زنده داری نمیکنه بل و منفی بلکه شب زنده داری میکنه کسی که در شبه یعنی ظاهد و شوارع لا تزدهم خیابانها ها شلوغ نمیکنن ایجاد زحمت برای همدیگه نمیکنن بل از دهم من به ها یعنی فی ها بلکه مردم هستند که در خیابون ها ایجاد زحمت میکنند با به معنای فی یعنی فی ها پس بنابراین فعل ازدهمت شبه فعل صائمون و قائمون فعل او شبه او فی غازین المثالین در این دوتا مثال اسناد اله غیر ماه و له اسناد داده شده به غیر ماه و وَلَّذِي و زَالِكَ اون چیزی که اجازه داده ما این رو بکنیم که به غیر ما و له اسناد بدیم یا غیر من و له اسناد بدیم اون چیه و صَلْ یعنی يعني جذب از زالک زالک ال اسناده انل للمسند فل فی سالن زمان الفعل یا مکان مصنده علی زمان فعل بوده یا بگید مکان فعل گفتم ما توی حتی شما تو این شعارهایی که روی نیوار از قول امام نوشتن دیدید نوشته آشورا اسلام را زنده نگه داشت یا رو پرچمان نوشته کربلا اسلام را زنده نگه داشت آشورا و کربلا یکی زمان است که مکان اسناد داده شده زنده نگه داشتن اسلام با آشورا و کربلا در صورتی که امام حسین اسلام را زنده نگه داشت در روز آشورا در صحرای کربلا زمان مکان یه مطلبی رو بگم که اینجا بدونید که ما نیاز داریم بعدا اینو میخونیم ولی ما ما گفتیم که اگر میخوایم به سبب نسبت بدیم باید اون سبب سبب اصلی باشه به فرعون میتونیم بگیم که فرزندان بنی اسرائیل رو سر میبرید و نمتونیم بگیم هامان این کار رو خب سبب باید سبب اصلی باشه دوم اگر به زمان و مکان نسبت میدیم باید اون زمان و مکان زمان و مکان اختصاصی باشه درست شده نه؟ که ازش فهمیده بشه مثلا آشورا اختصاص داره به امام حسین کربلا اختصاص داره به نبتونیم بگیم اراق اسلام را زنده نگرداش نه درسته کربلا تو اراغه ولی ازش در نمیادیم مطلب درست شده نه زمان و مکانش باید زمان و مکانه بگید اختصاصی باشه یعنی جوری باشه که ما بتونیمون فایل واقعی رو بفهمیم اون فاعل واقعی رو بفهم الان نگاه کنید توی نموزج ها نموزج سه رو ببینید سه میگه که ذهبنا الی حدیقتن ما رفتیم به یک باقی قناع غنا از قن یعنی تنیم کردن درست شد قن یعنی تنین کردن قناع مثل همراه مثل سفرا مثل امیا صفت مشبه هست اقن مذکرش قناع معنسش صفت حدیب است. ترجمه میشه چی؟ ما رفتیم به یک باقی که تنین داشت پرتنین بود ترجمه میشه دیگه ما به باقی پر تنین رفتیم پر سر و صدافت. حالا سوال اینجا ما غنا توشیه هی است برمیگرده به هدیقه صفت دیگه؟ صفت مشبه است غننا. این الان برمیگرده به حدیقه ما غن و تنین رو نسبت دادیم به هدیقه رفتیم به باقی پر سر و صدا ما میگه رفتیم به باقی پر سر و صدا پر تنین حالا سوال اینه باغ تنین داشته باغ تنین نداره که شما باغ رو بریتو درست شده نه درخت هست تو زمین هست تو آب هست تو تنین نداره با سر و صدا نداره چی سر و صدا دارد در باغ پرندگانش بولبولها گنجشکها اینها هستند که سعد یعنی اگه میخواست حقیقت بگه باید سر و صدا رو نسبت میداد به پرندگان باغ میگفت رفتیم به باقی که پرندگان پر سر و صدا بودند این شد حقیقت ولی الان میگه باقی پر سر و صدا باقی پر تنین تنین داشتن و نسبت داده به باغ در صورتی که تنین داشتن ماله بگید پرندگان اون باقی اصناد داده به مکان درست شد؟ اصناد داده به مکان نگاه کنید میگه که زهبنا الى حدیقت قنلا قنلا میگه مشتقتون من القن قن یعنی تنیل کردن سرسدار کردن قنلا مشتقتون من القن والحديقه لا تقنم همتون میدونید که باغ سر و نمیکنه، نمی کنه تنینی نمی کنه و انم الذی یبنا و اون چیزی که تو باغ سر صدا میکنه اسافی روها و زباب این دیگه خیلی میگه اونی که سر صدا میکنه تو باغ گنجش ها هستند و مگس ها دیگه بلاوت داریم دیگه مزبله و زبالدونی که نرفته بوده داشته تعریف میکرده ما به یه باغی پر سر و صدا رفتیم باغی پرتنین رفتیم او اولا گنجشگاش درست پرسرش بگفت مثلا این نما الازی یقنه اصافی ها او و بلا بلابلوها تویوروها اینطور رو خودیم مگس هاش اصطدا میکردن که خب میشه زبالدونی باغ نبود و خب بگذریم اون زبابه ها مزموم از نوشتاری آه. نوست چیز میگه اونی که سرسدامی میکرده گنجشکاش بوده و مگستاش بهتر بوده که گنجشکا بود و پرندگانش گنجشکا بود و آ قنا مشتقتون بلالقن وله حدیقتو لا تقنو و هلما لذی یقنو اصافی ها جمع اصفور گنجش او زبابه ها ففل کلام مجازون عقلی علاقتو ها ال... مکنه مجاز عقلی علاقش بگید مکانیت علاقش مکانیت نگاه کنید مثال یکشو مثال یکش قال المتنبی خوب دقت کنید میگه ابل مسک مسک کنیه کافور اخشیدیه پادشاه مصر کنیه عوز. مسک یعنی یا اولمسک یه غلام بوده این کافور اخشیدی غلام بوده که کنیش مسکه و حاکم مصر بوده متنبی موضوعی که از سیفون دوله جدا شد رفت او رو مطمی کرد میگه ای آقای کافور اخشیدی اولمسک ارجو من کن نصرن علل ادا ادا یعنی دشمنان حل ادا یعنی این دشمنان دشمنان خودش میگه ارجو که امیدوارم از جانب تو نصرم پیروزی یاری من از جانب تو یاری و پیروزی میخوام علل ادا بر این دشمنان آقای ابوالمسک امید دارم به تو که منو یاری بدی بر علیه این دشمنان خب این درست و آمولو و امیدوارم از وجای ارجو و آمول و عزت و از طرف تو یک عزت و شرفی میخوام و آمول و عزت یخ زبول بیزه به عزت و شرفی میخوام که خزاب کند رنگین کند البیز یعنی این شمشیرهای ما را به دم یعنی با خون این دشمنان البیز یعنی بیزن ها یعنی سیوفن به دم یعنی به دم العدا. خب پس گفت آقای ابوالمسک من از شما چشم و امید دارم که منو یاری کنید بر علیه دشمنانم و امیدوارم به من یه عزتی بدی که اون عزت یخزه با صفت زمیر داخل یخزه با است حوض برمیگرده به از من از جالب شما یه عزتی میخوام که خذاب کند شمشیرهای ما را به خون دشمنان حالا همینجا سؤاله شمشیرهای اینها را به خون دشمنان عزت رنگین میکند؟ عزت که آقای مسک بدهد اینا عزیزش کنه آ اینو بالا ببره اون عزت میاد این شمشیرها رو رنگین به خونه دشمنان میکنه یا خود اینها رنگین میکنن اینها شمشیر میگیرن میزنن دشمن رو ناکار میکنن و شمشیر خونین میشه عزت شمشیر را خونین میکنه یا اینها شمشیرهایشان را خونین به خونه دشمن میکنه اینها اما چی سبب میشه که اینها بتون چرا الان نمیتونن شمشیر خونیل کنن از خونه دشمن چون عزت ندارن ولی اگه زور و بازو پیدا کردن قدرت پیدا کردن عزت پیدا کردن شمشیرهاشون رو به خون دشمن دنگل میکنن پس عزت سببه یعنی اگر میخواست حقیقت بگه باید میگفتش که عزت نخزه و بهی البیزه بدم. عزتی که خذاب کنیم با آن به سبب آن شمشیرهایمان را از خون دشمن عزت رو سبب برای رنگین کردن شمشیر به خون دشمن اما آمده اسناد داده رنگین کردن شمشیرها را به خون دشمن به عزت در صورت که خودشون این کارو میکنن آه، اما به سبب عزتی که پیدا میکنن چون عزت دارند این سبب میشه که شمشیرها را به خونه دشمن رنگین سازند. اگر میخواست حقیقت بگه باید میگفت نخزب بهی بهی یعنی به این عزت به سبب این عزت نخزب و بهی البیزا بدن این اولی نگاه کنید پایین هاشیه یک ابلمسک کنیت و کافور الاخشیدی ولبیز از سیوف یقول ارجو که ان تنسرنی امیدوارم تو منو یاری کنی الان عدایی بر دشمنانم و ان طولینی طولینی یعنی توعتینی بدهی به من و ان طولینی ازن و به من عزتی بدی اتمکنو بهی که قدرت بیابم اتمکنو یعنی مکنت پیدا کنم مکنت یعنی قدرت قدرت بیاب به سبب اون ازت من هم نسبت به دشمنانم و اخذ و سیوفی به دماغم و رنگین کنم شمشیرهایم را به خون دشمنانم به واسطه اون عزتی که تو ببند میدیم اینوشه حقیقت بیایید بریم سر بیت دوفا و یا من اتوجه از زنه و امیدوارم روزی را روزی که یقیز ذل روزی که به خشم می آوند این حسودان رو یعنی این دشمنان رو حالا اون روز ببین یغیزو هوا توشه برمیگرده به یم اون روز به خشم میاره حسودان رو اون روز به خشم میاره اون روز به خشم میاره یا بگید هوادث اون روز به خشم میاره حوادث اون روز به خشم میاره حسودان رو ولی تو اون روزه اثناد داده به زمان مثل یا یوما یجعل الولدانشیبا که مثال من زدم واتقو یوما و امیدوارم روزی که امیدوارم روزی را که به خشم آورد این حسودان را و حالتن عطفه جای باز ازننه. و امیدوارم یه حالتی پیش بیاد اقیم و شقا فیها اینجا اقیم و خودشو میگه اقیم و شقا شقا یعنی بدبختی که جانشین کنم من بدبختی را فیها در اون حالت مقامت تنعام به جای این ناز و نعمتی که دشمنان دارد. امیدوارم یه حالتی پیش بیاد که من جایگزین سازم بدبختی را اشتقا در اون حالت به جای مقامه به جای تنعم این خوشبختی که اینا توشد میره چی نیست اما تو اون یومن یغیزو بله روزی که به خشم آورد حسودان رو روز به خشم نمیاره حبادث اون روز برست شد حبادث اون روز پایین نگاه کنید میگه که یقولو و ارجو ان به بکیو من امیدوارم به واسطه تو برسم به روزی که یق تاز و فیه خشگی میمیشم من در اون روز حسادی حسودان من لما یرونم من اعزام که لقدری به خاطر اینکه که میبینن تو چقدر من رو عظیم شمردی به من اهمیت دادی منو تعظیم کردی حسودا از حسادت بترکن وقتی ببینن تو اینقدر من احترام گذاشتیم لما نه به خاطر آنچه که میبینن او رو از تعظیم و بزرگداشت تو نسبت به من و کزاله که ارجو و همچنین امیدوارم ان به که حالتن که به واسطه تو برسم به یک حالتی که تو نی علل انتقام من هم. کمک کنه من رو که انتقام بگیرم از این دشمنان فعتنه اما به شقایی فی بهم تا من کیف کنم با بدبختی که به اینها میدم در جنگ با اینها دلم خونک شه. حالا شاهد ما یکی یخزواه که نسبت داده شده به, ایز. به از در صورتی که خزاب کننده از نیست اون افرادن اما به سبب از یقیزوه که اسناد داده شده به یوم در صورت یوم به خشم نمیاره حوادث یوم به خشم میاره حوادث در آن روز نگاه کنید توی اجابه ازدر یخز بلویزه به دمی اصناد و خزب سیوف اسناد رنگین کردن شمشیرها به دم الى زمیر به زمیر از غیر و حقیقیه این اصلاح حقیقی نیست لعنل زلا یخزه با سویوف، زیرا از نیست که شمشیرها رو رنگیم میکنه ولیکن نهو سبب القبل، بلکه از سبب توان میشه و جمع ابطال میشه لشکر رو متحد میکنه توان میده با اونها از لشکری که تهلوانانی که قهرمانانی که الذین یخزه با اون از شمشیرهاشون رو با خون دشمن رنگیم میکنه قفل عبارت مجاز و نقلی علاقت و از سببی دوم و یومن یقیز الحاسدین اسناد و غیز الحاسدین الى زمیر الیوم اسناد غیز حاسدین خشمی کردن حسودان به زمیر یوم غیر حقیقی زمیر یغیزو برگردد به یوم غیر حقیقی غیر اندال یوم هو زمان یحصل و لذیه یحسل فیه القیز بله این میشه چون یوم زمانیه که قیز درش حاصل میشه خشم دشمن درش حاصل میشه ففل عبارت مجاز و نقلی رو از زمانیتو پس من سببیت زمانیت مکانیت رو به طور کامل برای شما بیان کردم و عنوان کردم و شما این مطلب رو دانستید درست شد و یه مستریت فائلیت مفعولیت میماند که انشالله جلسه بعد بخوانم با به خودمون یک تکهی که مجاز رو فوایدشو بیان میکنه که من اون رو در واقع عنوان هم کردم بیانم کردم که درس مجاز به طور کل انشالله تمام بشه ما شما رو به خداوند سبحان میسپریم سعی کنید مباحث رو انشاالله خوب یاد بگیرید اینها مباحثیه که اغلی یادگیریه مثل ریاضی میمونه قشنگ انسان میتونه باهاش کنار بیاد و خوب اینها رو بفهمه و استفاده هم ازش ببره موفق و مؤید و منصور باشید خدا نگهدار و سلام علیکم و رحمت الله و برکن.